بسم الله الرحمن الرحيم باب الإسقاط ومن لا يرث بحاله باب إسقاط وكسي كدر هيچ حالة إرس نبوله منظور إسقاط همون حاجب حيرمانه حاجبه چه؟ إنجا در واقع حاجب ومحجوب توزيح مده حاجبوني كه يكي ديگر واز إرس محجوب میکنه ديگو ان طرفه إرس نمي باره انا رو إنجا ديگو توزيح بس اینجا منظور ما از اسقاط اسقاط نقصان نیست یا حجب نقصان نیست حجب حیرمانه یا بالابی قطب ابی ابواه و ولده ساقط میشه به وسیله پدر ابواه پدر و مادرش یعنی یک شخص میتی مرده پدر داره و پدر بزرگ داره اینجا پدر پدر و محجوب میکنه دیگه پدر بزرگ ارسی مادر پدر هم ارسی نمیبره حاجب پدر رو میگن اونا رو چی میگن؟ محجوب و ولده و ولد اون پدر با پدر محجوب میشن چطوری؟ یعنی میت مرده برادر داره که فرزندان پدرش هست دیگه پدر هم زنده است میگه پدر اینجا فرزندان خودش رو که برادران میتن چیکار میکنه؟ حج میکنه پس مح... ساقید میشن به وسیله پدر پدر و مادرش؟ و فرزندان پدر که چیکاره میتن برادر و خواهرش که چیکاره میتن باره پس پدر پدر بزرگ و مادر بزرگ و... یعنی مادر خودشو حجم میکنه و فرزندان پدر هم از برادرشون ارث نمیبرن زمانی که پدر باشه و بالامه جمیع الجدات حجم میشند ساقط میشند با مادر تمام مادر بزرگ ها مادر که وجود داشته باشه هیچ مادر بزرگی ارث نمی باره. و بالقربه من الجدات لامن من بودا جمعی یعنی و میشن این وابا عطفه بالقربه من, من الجدات لام، و ساقط میشن با مادر بزرگ, مادر بزرگ های نزدیک مادری وساقیت میشن به وسیله مادر بزرگان مادری که نزدیک هستن بعدا مادر بزرگان دورتر جمیعهن همهشون مادر بزرگی که دورتر باشه فرقی نمیکنه با مادر بزرگ مادری بس چی میشن بله شخص فوت کرده مادر مادر داره هر مادر بزرگ دورتری ازش هست تماما چگار میکنه ساقت میکنه و بالابن من دوله و ساقت میشه به وسیله پسر اونایی که پاینتر از پسرند منظور پسر پسر و پسر پسر پسر هرچی پایینتر باشه چه؟ بالی و يسقط ولد الام باربعه ولد ام با 4 نفر ساقط میشه فرزند مادر فرزند مادر میتا فرزند مادر مثلا میت مادری داره فرزند داره از طرف مادرش که خواهر و برادرای مادری بهش میگن اینا ساقط میشن با 4 نفر یک با بل ولد میت ولد داشته باشه فرقی نمیکنه چه دختر چه ولد الابل ولدي ابل داشته باشه وبالابه پدر والجد و پدر بزرگ پدر بزرگ هم اولاد امو ساقط میکنه و يسقط الاخوه والاخوات اللي اب و برادران و خواهران شقیقه با سه کس ساقط میشند محجوب میشند ارث نمیبرند و ساقط میشند برادران و خواهران پدر و مادری یعنی برادر و خواهران شقیقه ما یک مرده برادر و خواهر پدر و مادری داره برادر و خواهری داره که هم از طرف پدر برادر و خواهرن هم از طرف مادر اینا با سه نفر محجوب میشن بل ایبل میت خودش پسر داشته باشه اگه میت پسر داشته باشه برادر و خواهرای میت ارث نمیبرند و ابن الابن ابن ابن هم داشته باشه اونا ارث برند و پدر که هم داشته باشه برادر و خواهرای میت چه شقیقه باشه چه غیرش ایرز. نمی نمیبرد اینا بودن برادر خواهرای شقیقه اما برادر و خواهرای پدری و يسقط الاخوه والاخوات لاب بالاخ لاب و ام و ساقط میشن برادر و پدری با برادر پدر و مادری میت مرده یک برادر شقیقه داره یک برادر پدری داره برادر پدری با این برادر حقیقی یا شقیق چی میشه ساقط میشه فرقی نمیکنه برادر و خواهر هر چه باشون دیگه اون اون اون سایه بالای که درست سر جاش بمونه یعنی موقعی که برادر و خواهرایش شقیق برادر و خواهرای پدر و مادری با پسر با پسر پسر و با پدر ساقط میشن برادر و خواهرای پدری هم با اونا ساقط میشن به اضافه اونا با شقیق هم اینا چی میشن ساقط میشن یعنی به اضافه اون سه نفر با برادر شقیق پدری و خواهرای پدری چی میشن پس اینا با چهار نفر ساقط میشن در واقع بس انا در واقع با چن نفر ويسقط يسقطو ويسقط و يسقطو الإخوة أولادهم وأعمامهم و ساقط ميكونا ببن انجا يسقطو قد ساقط ميشبت و يسقطو فالد المتعدية ساقط ميكونات و يسقطو الإخوة و برادران أولادهم فرزندارش هندرا يعني اگر برادر وجود داشته باشه فرزندش ارثی نمیبره و اعمامهم و اموها شره امو مید با وجود برادر مید ارث نمیبره برادر اون رو ساقط ولا يرث القاتل عمدا ولا خطئا في حق ولا باطل من مقتوله ويرث غيره ارث نمیبره قاتل عمدا و ما قاتل في حق وباطل ولا باطل ما هو باطل بس إرس نبي بار قاتل أم ديو در حق وباطل من مقتوليه أز مقتولش إرس نبي باري بقدر بها عريقية اختلاف فقهاص وقال المالكيه إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء كان بباشرة أو سببا إمام مالك يا مالكي هاو که گفتن اون قتلی که مانه از میراسه قتل هم دو ادوانه، قتل چه؟ هم دو نه قتل خطا، نه قتلی که از روی حق باشه و یاری ثو غیره، ولی از باقیه میبره، فقط از مقتولش ارز پس میگن امد و خطه فرقی نمیکنه قاتل از مقتول ارس ولی اگر مقصد نگریسته بشه هم این فقه ها توجیهاتی دارن و هم اونا منظور از لحاظ نقلی که نیست خب از لحاظ نقلی مطلق اومده مشخص نکرده اومده قاتل ارس نمی بیبره اونجا بحث خطا و عمدش بحث نشده به این خاطر که فقه اومدن این اجتهاد کردن اینا جنبه احتیاط نزد جمهور بیشتره تا یکی نیاد به هیچ طریقی مقتولش رو اون رو نکوشه که زودتر ازش ارسی ببره نه ممکن است یکی بیاد بکشه و اینا خطایی بوده آ؟ یعنی راه و اینا بهتر بستن ولی اللحازه واقعا حق بودن نظریه امام مالک بهتر میچسبه چون این قتل اصلا طرف نخاسه بکشه ولی با ماشین بوده بیچاره زده یا تیر میخواسته روی پرنده نزنه روی محرسش خورده و كاري داري ما نظر فقاي بزرقوال وخوندي ما كاري بيونيش ناداري ولا يرث الكافر مسلما ولا المسلم وكافر. كافر كافر مسلمانو يرث نمي باري ومسلماناس كافر والكفر كله ملة يتوارث أهله وإن اختلفت أديانهم ميجي كفر هميش يك ملة أهل شاسم يرث مي باران أجر شك أديان شون باهم ديجي. فرق داشته باشه ولا يرث العبد ولا المدبر ولا المكاتب ولا ام ولد ولا يرثون و يكون مالهم للسيد می گه ارث نمی بره عبد و مدبر مدبر اونیه که سیدش گفته بعد از مرگ من چه بشه آزاد بشه و وصیت کرده پس ارس نمی بره عبد و المدبر و عبد مدبر ها این هم عبده ولی یه نوع متفاوت ولا المکاتب یا ولا المکاتب مکاتب همه هم نمیبره مکاتب اون یکی با سیدش قرارداد داره یه چیزی رو بشمیده که آزاد بشه نه میگه چون کامل آزاد نشده ارس ولا ام ولد ام ولد هم ارس نمیبره ام ولد اون ای رو میگند که کنیزی رو میگند که از سیدش فرزند آورده و با این فرزند آوردن بعد از مرگ سید چی میشه؟ آزاد میشه با این فرزند آوردن چی میشه؟ آزاد میشه پس مدبر میگه عبد مدبر مکاتب, مکاتب و ام ولد اینا ارث میگه نمیبرند ولا یورثون و ازشون ارث برده نمیشه و یکونو مالهم هم لسید میگه مالشون مال سیده ولی خوب در اینا حتما اختلافاتی هست در عبد منظورم عبد که عبد نه مباله ولا یرثو عبد قن یعنی همون عبد خالص که فرق میکنه اون که ارسی نبی باره باره قطعا دیگه ولا یرثو المرتد ولا یورت مرتد ارس نبی برای و ازش ارس برده نمیشه و یکونو مالهو لبیت المال و مالش مال بیت و المال میشه و اذا عمی موت المتوارثین به غرق او هدم و لم یعلم ایوهما تقدم قطع التوارث بینهما و زمانی که پوشیده شد دانسته نشد کور ماند موت افرادی کس هم دیگه ارس میبرند اونای کس هم دیگه چی میبرند؟ با غرق شدن یا با نابود شدن ساختمان خراب شدن ساختمانی چیزی و دانسته نشد که کدوم یکی قبلن مرده چون شرط میراث اینه که اونی که قبلن مرده مورث و میراث بر بعدش بمیره دیگه موقعی که دانسته نشه کدوم یکی از این اول برده کدوم یکی از این به ارث میبره مثلا هم پدر از پسر ارث میبره و هم پسر از پدر موقع... ولی چه موقعی ارث میبرت زمانی که دانسته میشه کدوم یکی اول مرد اون یکی دیگه از اش میبره قانون اینه دیگه موقعی که دانسه نشد که یکی از اینا قبلش مرده این اختلافی ها. میگه زمانی که موت متوارسین دانسه شد که کدوم یکی ولم یو علم تقدم دانسه نشد که کدوم یکی قبلش مرده قطع اتوارس و بین همه ارز بردن بین اینا چی میشه قطع میشه از همدیگه ارز نمیبرند.